علم خود را برکوغز بی مقدار و این خود را با موضوع درباره انتخابات هرچه می دانید بنویسید و غوظ می نمویم مدر عزیز ما معتقد است چیزی که از صندوق رای در می آید آن چیزی نیست که ایشان در درون آن انداخته است و به همین دلیل ایشان هنوز مطمئن نیست که رای می دهد یا نه وقتی ما با معصومانه از ایشان پرسیدیم که ای مادر گرامی وقتی شما در درون صندوق رایت را می اندازی وقتی در به آن را باز می هم از آن رای شما و دیگران بیرون می آید دیگر که ایشان در این لحظه سعی به تحصیف تکن داده از داشتن فرزندی به خنگی و سادگی ما حسابی حسرت خورده و از اینکه که با پدر ما وصلت کرده که نتیجهش بچه با این فهم سیاسی و انتخاباتی پایین میباشد ابراز پشیمانی نبود و بدین وسیله کل دانش ما را که در کتاب علوم خانده بودیم رأی از بین نمیرود ولی وقتی به داخل صندوق رفت از آن بیرون محاویت را زیر سوال برده ما را در نامیدی فرو برد پدر من در حالی که داشت به یک برنامه کفشوگرانی محواره نگاه می کرد و هی حسرت میخورد در پاسخ سوال ما اینه تو به دولاویهی که محکم آن را بشوتی از جا پریده چیزی نمانده بود روی ما فروت بیاید و پس از اینکه به اول و وسط و آخر و چپ و راست و والا و پایین و دیگه همه مسئولین فوشای رکیف داد اجازه اعلام کرد دیگه نمیتونه این سحن آراوی خطرنام که انتخاباتی را تحمل کنه و برای همین به نشانه اعتراض درست در روز انتخابات ایران را به مقصد تر ت